قイズ تا از در میخانه گشادی طلبیم بر ره دوست نشینی و مرادی طلبیم زاد راه حرم وصل نداریم مگر به گدایی در میکده زادی طلبیم اشک آلوده ما گرچه روان است ولی به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام اگر از جور غم عشق تو دادی طلبین نقطه خال تو بر لوه بسر نتوان زد مگر از مردمک دیده مدادی طلبین عشبه ای از لب شیرین تو دل خواست به جان به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبین صابوبت نسخه عطری دل سودا زده را از خط قالی سای تو سوابی طلبی چون قمت را نتوان یافت مگر در دل شاد ما به امید قمت خاطر شادی طلبی بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ خیز تا از در میخانه گشادی طلبی